شاملو این داستان سرمه مرد ترسو سالها قبل در سرزمینی دو مرد به نام های بارتاسکلت و ایمقای زندگی می کردند. بارتا سگلت به معنی مردی شجاع و این به معنی مردی ترسو بود. راستی که یکی از اونها شجاع و دلیر و دیگری بزدل و ترسو بود. و این نام ها مثل لباسی برازنده اون دو مرد بود. روزی از روزها دشمن به سرزمین اونها حمله کرد. جنگ سختی در پیش بود. حاکم از همه افرادی که جوان بودند و توانایی جنگ داشتند، درخواست کرد تا برای بیرون راندن دشمن از سرزمین به سربازهای اون کمک کنن بارتا وقتی درخواست حاکم رو شنید تیر و کمانش رو برداشت سوار اسبش شد و به سوی میدون جنگ تاخت از طرف دیگه این در حالی که از ترس می لرزید و جواهرات خودش رو در محل امنی خواب کرد و در کوهستان پنهان شد در میدان جنگ دلاوران شجاع هر دو طرف به جان هم افتاده بودن از جایی صدای برخورد شمشیرها به گوش می رسید و جای دیگه صدای قررش تیرها بود که از کمانها جدا می شدند. بارتا که تیراندازی ماهرش ماهر و شجاع بود دلاوری خودش رو به نمایش گذاشت و در زمانی کوتاه تیرهای اون تعداد بیشماری از سپاهیان دشمن رو به زمین انداخت سرانجام بعد از جنگی شدید سپاهیان دشمن شکست خوردند و یک به یک و دسته دسته از میدون جنگ گریختند دلاوران پیروز حاکم هم به شهر خودشون برگشتند اولین کسی که بعد از جنگ به شهر برگشت ایمقای ترسو بود روز بعد حاکم تصمیم گرفت به مناسبت این پیروزی بزرگ جشنی بپا کنه. اون همه مردان دلاور خودش رو به جشن دعوت کرد. وقتی که همه سپاهیان گرد اومدن، حاکم متوجه شد بارتای شجاع هنوز از میدون جنگ برنگشته به همین دلیل افرادش رو به جستجوی اون فرستاد. میدان جنگ سحنه هولناک و دلخراشی داشت. هر گوشه‌ای مردهای افتاده بود و لاشخورها در آسمون پرواز میکردند اونها بعد از جستجوی زیاد بارها رو پیدا کردند که در میدون جنگ به زمین افتاده بود ظاهرش نشون میداد که زخمی نشده یکی از مأمورین با صدای بلند گفت ها تو چرا به شهر نیمدی زود برخیج و با ما بیا حاکم در جشنی که ترتیب داده منتظر توست بارتای بینوا با صدایی خسته از ته گلو درمیمد به اونا گفت دیگه نه در جشن نمیتونم شرکت کنم و نه از زندگیم لذت ببرم تیره دشمن به چشمهای من خورده و برای همیشه منو از بینایی محروم کرده مأموران حاکم اون رو بر اسبی سوار کردند و به شهر برگردوندند به دستور حاکم اون رو به خونه دوستش ایمقای بردن تا از اون مراقبت رو پرستاری کنه اما ایمقای اصلا دلش نمیخواست وقتی گرونبه های خودش رو خرج نگهداری از یک آدم نابینا بکنه بنابراین اون رو رها کرد و به آرامی به رختخواب گرم و نرم خودش فرو رفت صبح روز بعد وقتی که ایمقای از خواب برخاست، احساس کرد همه جا تاریکه دیری بود که خروس ها خونده بودن وگرنه من گمام می هنوز سهر نشده ناگهان پی برد که بینانی از دست داده از خشم و ترس فریاد بلند و درناکی کشید کمک کمک من کور شدم همه جا سیاه و چیزی رو نمی بارتا که فریادهای اون رو شنیده بود کورمال کورمال، جلو اومد و به اون دلداری داد. دوست من نه ترس من اینجا هستم هر طوری که باشه به تو کمک می‌کنم در اون لحظه صدای مرد غریبه‌ای رو شنید که به اون اطمینان میداد و میگفت برای اینها ناراحت نباش اگر هر چوری که من میگم انجام بدی به اون کمک خواهم کرد باطا دست‌هاشو در هوا تکون داد و گفت تو کی هستی مرد گفت تو کاری نداشته باش که من چه کسی هستم در جهتی که به تو میگم حرکت کن اونقدر برو تا به تخت سنگ بزرگی برسی بعد دو مرتبه فقط دو مرتبه دست هات رو به اون تخت سنگ بزن و ببین چه اتفاقی خواهد افتاد بارتا قبول کرد و با خوشبینی و قلبی پاک قدم به راهی گذاشت که اون غریبه نشون داده بود بعد از مدتی به تخت سنگ بزرگی برخورد کرد و به زنین افتاد. وقتی که دنست رو برای دومین بار به تخت سنگ زد ناگهان نور سفیدی سیاهی دیدگانش رو پوشند و در یک چشم هم زدن بیناییش رو به دست رو برد. بارتا خیلی خوشحال شد و خندان به راهش ادامه داد. چیزی نگذشت که به باغ پرگل و زیبایی رسید. باغی پر از گلهای سرخ و یاس و داوودی و نیناب و شقایق از پس چشمای زلال و روشنش تصویر پروانه های شاد و سرخوشی رو دید که به روی گلها می قدم به درون باغ گذاشت. از بوی خوش گلها سرمز شده بود. در وسط باغ، قالی بزرگ و زیبای پهن شده بود. هیچ کس در اون اطراف نبود. جلوتر رفت. روی قالی سفرهی بزرگی رو دید که پر از ظروف قضا بود اون هم چه قضاهایی آب از دهانش رو افتاده بود این سفر طولانی خیلی اونو گرسنه کرده بود آرزو داشت فقط چند لغمه از اون قضاها بخوره اما دست نزد باید از صاحب باغ اجازه می‌گرفت بنابراین نشست و منتظر صاحب باغ شد ناگهان آتش و دودی از زمین بلند شد و در مقابلش هیولای وحشتناکی ظاهر شد. هیولایی که سه تا سر داشت و از دهانش آتش بیرون میجهید هیولا فریاد کشید تو در اینجا چیکار میکنی؟ بارتا به زحمت از جا بلند شد و جواب داد من گرستم و این قضاها بد جوری منو وسوسه کرده. هیولا به سر تا بارتا نگاهی کرده و گفت پس جلو برو یک شکم سیر غذا بخور بارتا گفت منتظر صاحب باغ هستم تا او اجازه نده که نمیتونم دست به چیزی بزنم هیولا قرشی آتشین کرد و گفت یا غذا بخور یا من تو رو میخورم بارتا خودش رو از زیر پنجاههاا تیز و خونبار اون بیرون کشید و تسلیم حیولا نشد ناگهان هیولا ناپدید شد و به جای اون پیرمردی ظاهر شد. بارتا از صدای پیرمرد این رو شناخت. همون بود که این رو به این سفر فرستاده بود. پیرمرد خندید و گفت: من به شکل حیولا در اومدم تا تو رو امتحان کنم. خوشحالم از اینکه فهمیدم تو مرد درست کاری هستی و به حق خودت قانه هستی و برای دیگران شادی به همراه میاری. پیرمرد این رو گفت و ناپدید شد. بارتا به شهر خودش برگشت در شهر ایمقای رو دید که هنوز نابینا بود و می کرد دلش برای اون سوخت کنارش نشست و احوالش رو پرسید بعد از شانس و اقبال خودش برای اون حرف زد و اینکه چطور بیناییش رو به دست آورده به اون پیشنهاد کرد به همون راه بره و همون کارها رو انجام بده ایمقای کار در همون جهتی که بارتا گفته بود به راه افتاد کورمان کورمان رفت تا به تخت سنگ جادویی رسید اما به جای اینکه دو مرتبه به اون سنگ دست بزنه سه مرتبه به تخت سنگ دست زد به خیالش با این کار زودتر به هدفش میرسید در یک چشم به هم زدن بینایش رو به دست آورد اون بهتر از همیشه میدید چون به جای دو تا چش سه چشم داشت چشمه سوم روی پیشونیش به وجود اومده بود و ظاهری شیطانی به اون بخشیده بود این قای به راهش ادامه داد و رفت و رفت تا به باقی رسید که بارتا دربارش حرف زده بود اون به گل‌های رنگارنگ و پروانه های زیبا توجهی نکرد و خودش رو به سفره رسوند و با دهانی که صدای ملت و چه حریسان از اون بلند بود همه غذاها رو خورد ته بشقاب‌ها رو لیسید و پاک کرد بعد به خواب عمیقی فرو رفت هنگامی که او در خواب خوش گوته بر بود چند حیوان وحشی به باغ اومدن حیوان ها وقتی ظروف غذاها رو خالی دیدند، عصبانی شدند و گفتند برای ما غذای نمونده یکی از حیوان ها به ایمقایی که مانند یک کنده درخت به خواب رفته بود اشاره کرد و گفت نگاه کنید این مرد همه غذاهای ما رو خورده دیگری نزدیکتر رفت و به چهره ایمقای خیره شد و گفت اون موجود عجیبیه نگاه کنید اون سه تا چشم داره در حالی که آدم ها فقط دو چشم دارند به نظرم این موجود زشت و بدزاد آدمی زاد نیست حیوان های ایمقای رو تیکه تکه کردند و به جای غذایی که در سفره داشتن خوردند هنگامی که بارتا خبر مرگ دوستش رو شنید از ته قلب غمگین شد در حالی که دیگرون می سزای آدمهای های تمعکار همینه بله دوستان من سزای آدمهای های تمعکار همینه سفات گذارم که تا به انتهای این داستان هم با من همراه و همسفر بودی و امیدوارم که در داستان بعدی هم با من همراه باشید. برای شما عزیزان دنیا دنیا سلامتی و شادی آرزو می کنم. مراقب خوبی ها و مهربونی های خودتون باشید. پس تا قصه بعدی خداییار و نگهدار شما.